برنامه های دانش برنامه از همجمن استادان و پجوشگران ایدانی ارجمند با که هفته خوبی پشت گذاشته باشید و آماده روزهای خوب آینده باشید. خوشحالم که باگاهایی با شما برسن که در برنامه امروز آقای دکتر وحید ماهبادی پروفسور پزشکی یسیه در آیویو میک Centerتر برای ما پیرامون دیابت بیماری خند متابولیک سیندروم و درمان آنها خواهند گفت. های دکتر محبادی دوری رزیسی خود رو در پیزشکی چارز رو گذارندند و فلوشیب یا فوق تخصص خودشون رو در اندوکرنولوژی قدود دران ریز متراشه داخلی در سیستم یوسیلی در هاربر یوسیلی تکمیل کردند. های دکتر محبادی بورد سرتفایت هستند در بسیاری زمینه ها از جمله در پزشکی داخلی، اندوکرنولوژی، بیماری غند و بسیار رشدهای دیگر. مقالات ارزنده در جنره های که با امپک فاکتور بالا به چاب رسندند و در کنفرانس های سراسری و جهانی ساخنانی کردند و در بسیاری پژوهش‌های های بزرگ بالینی کلینیکال آف ها رول و نقش اساسی داشته و دارند. خاطرم از آکادمیه پزشکان ایرانی در کنفرانس سالن خود در 2013 از میان بسیار متقصدین برجستهی که در دارند و درزیمین و دیابیت سخشی ناسو زبان زادستند آقای دکتو موادی رو برای گزارش دادن پیرامون تازه های و درمان آن برگزیده بودند که بسیار آموزنده و آگاهی دهنده بود و بسیار لذت بختیم در بخش دوم پژوهشگر نوید موادی پیرامون بالا بودن فشار خون هایپرتنشین برای مخواهند گفت و در پایان هر بخش تلفن رو باز میکنیم 323-512-7264 پرده 20-25 دیگه 323-512-7264 و به پرسش های شما پاسخ داد خواهد شد چرا دکتر مابادی بسیار سپاس گذار که در حالت انجام اصدادان رو پذیرفتید و برای ما دیابت دیابتو Bedøvelig syn, Robert. Med hensyn det en باشم det er بحث at det er en meget اه همینجور اه صحبتی که قبلا با هم داشتیم راجع به اینکه چه موضوعی رو انتخاب کنیم برای بحث شما فرمودین که متابولیک سیندروم هم نکته خوبیه که بهش اشاره بشه این, این کار رو بازم سخت‌ترم می‌کنه میکنه به خاطر زیق وقتی که ما داریم در این زمینه من با متابولیک سیندروم شروع می‌کنم خیلی مختصر در مورد متابولیک سیندروم البته یه مقدار مطالب میتابولیکش خب خیلی گسترده هستش ولی اینی که آیا واقعاً این یه تشخیص جای یک گروه از سیمتومز همونجوری که سیندروم اسمش رو گذاشتن این خودش جای بحث و گفتگو است و بین متخصصین یه مقدار اختلاف نظر هستش سندرم منیش هستش حالا اگه به ریشه لغت برگردیم شاید خودی خود راحت‌تر باشه که از سان و روم میادش که سان میشه تو گدر رومم میشه یعنی گروه چیزی که با هم دیگه دارن حرکت میکنن و ران میکنن به همین خاطر هم هستش متابولیک سیندروم وقتی که یا هر سیندروم دیگه‌ای یک سری از شرایط یا به اصطلاح کاندیشنایی هستش که مریض میتونه داشته باشه ولی آیا این درست هست که ما اینو به عنوان تشخیص یا به عنوان دایگنوسیس روی مریض بذاریم جای بحث و گفتگو هستش و اینا متابولیک سیندروم در حقیقت اون ماحسلش یا اون چه که ازش نتیجه میشه خیلی مهم هستش شاید در بحله اول خیلی مهم نباشه که حالا افراد خیلی هستن اگر ما شاید افراد رو ببینیم خیلی ها یکی از این کامپاننت ها رو دارن ولی آنچه که بهش باید اهمیت داد اینه که در نهایت این سیندروم این سیندروم به کجا ختم میشه سندروم، متابولیک سیندروم دو, دو تا نتیجه یا شاید نتیجه مزر امده در یکیش دایبیتیز هستش و یکیش هم هارت دیزیز یا کاردیو وسکولار دیزیز یا بیماری های قلبی عروقی هستش اینا ارگانیزشن های مختلفی خیلی به حد در حد زیادی در این زمینه کار کردن خود شما یکی از لیدرها در این زمینه مخصوصاً در قسمت کلسترول و تحقیقات فراغونی دارین حدودا پنج تا شش کرائتری یا کرائتری مختلف هست برای این سیندروم که معمولا بعضی از اورگانایزیشن ها دو بعضی بعضیا سه تاشو میگن اگر وجود داشته باشه اون شخص متابولیک سیندروم داره حالا اگر بخوایم ریویو کنیم اینها رو که چی هستش اولی که قند مریض یا ب... فاستینگ بلاد یعنی قند مریض در حالت ناشتا 100 یا بیشتر باشه البته درستش اینه که 100 تا 125 باشه چون که باز دوباره اینجا مورد اختلاف هستش که وقتی 126 باشه ما تشخیص دیابت رو در حقیقت گذاشتیم و دیگه از اون حالت سیندروم یک سری معتقدن که خارج ما میشه مطلب دوم چاقی هستش و اوبیسیتیک که کریتری برای آقایون این هستش این یا چاقی دور شکم اندازه دور شکم 102 سانتی متر. سانتیمتر باشه و برای خانوما هشتاد سانتیمتر باز دوباره اینجام به نسبت اینی که اثنیک گروب یا قومیت از کجا میاد یه مقدار فرق میکنه ورلد هل ارگانیزیشن به نسبت امریکن دایبیسی اسوسیشن اینا باز دوباره تعریف های خودشون دارن یه مقدار بیشتر و کمتر مثال افرادی که در آسیا هستن مخصوصاً در اونیکی ما به عنوان ایجیال میشناسیم در چاینا به عنوان مثال یا در کره در اون قسمت یا حتی در هند در هند خودتون مستقر هستین که یه اپیدمی خیلی بزرگی از متابولیک سیندروم هستش و افراد هیچ این قسمت چاقی هیچ ندارن حتی وژیترین هستن حتی خیلی لاغر هستن ولی دیابت دارن و از اون طرف هم کلسترولشون که انزید میگردین 350 میلی گرم یا LDLشون بعد کلسترولشون چیز هست که این تقریبا در حوالی سال 2006 بود خیلی توجه ها رو جلب کرد به طرف خودش که با این قسمت چاقی هیچ همخونی نداشته شو اینا نکته دیگه یا کریتری های دیگه بلاد پریشر هستش معمولا بلاد پریشر یا فشار خونی که بالای 130 دیاستولیک سیستولیک 130 و دایستولیک بیشتر از 85 باشه این دوباره یکی از عواملی میتونه باشه که مریض بندی بشه برای میتابولیک سیندروم یا اخیران اضافه کردن که اگر درمان یا دارو میگیره برای فشار خون بعد بالا بودن ترایگلایسراید هست که از 150 بیشتر یا دوباره دارو براش میگیره کولیسترول خوب یا HDL هستش که در آقایون از چهل کمتر در خانوم از پنجا کمتر دوباره در اون قسمت قرار میگیرن و اینا اگر سه تا و بعضی ارگانیزشن ها میگن تا از اینا در افراد وجود داشته باشه این تشخیص متابولیک سیندروم جایزه که براشون اطلاق بشه ولی همون که باز دور در اول عرایزم خدمتون گفتم مهم اینه که نتیجه این ها چی میشه و تشخیص معمولا در چارت های پزشکی به صورت اندیویجوال یعنی مثل های بلاد پرشه یا دایبیدیس یا مثلا های کلسترول دیسلیپیدیمی یا معمولا گذاشته میشه حالا قسمت بعدی من دوست دارم که یه مقدار راجع به تشخیص دایبیتیز صحبت کنیم چجوری ما اصلا دایبیتیز را تشخیص می زیدیم؟ چهار روش هستش برای تشخیص قند ناشتا اگر 126 و بیشتر باشه این نشونه دایبیتیز هست بین 100 تا 125 معمولاً استلاحاً پی دایبیتیس بهش میگن یا مرحله قبل دایبیتیس یا حتی بعضی میگن انکریزد ریسک آفته دا دایبیتیس که یعنی اون خطر زیاد شده در منطقه حالا بتونیم بگیم شاید زرد هستن و اینا متاسفانه خب خیلی وقتا ما میبینیم که حتی بعضی از همکاران توجه ندارن که مثلا مریض با قند 102 یا 103 اومده و اینا نادیده می گیرن می که خب چیز هستش ولی این دقیقا شروع مشکل هستش و باید راه حلی پیدا شد بعد مرحله یا متد دوم برای تشخیص هموگلوبین ایوانسی است من اینجا خوب یادیم از دکتر رهبر بکنم ایشون از پیشروان در این زمینه بودن و کسی بودن که هموگلوبین ایوانسی را اصلا معرفی کردن به جهان و یکی از افرادی بودن که واقعا محق دریافت جایزه نوبل بودن ایشون. بر اساس هموگلوبین ایوانسی هموگلوبین ایوانسی چی هستش؟ این قند وقتی که در خون بالا میره میچسبه به هموگلوبین و این چسبیدن ایرورسیبیل یا برگشت ناپذیره. و در زمان طول عمر گلوبولای قرمز به همون صورت چسبیده است که معمولا گلو قرمز هر 120 روز یک بار ریسایکل میشن در نتیجه وقتی که ما هموگلوبین ایوانسی رو چک میکنیم به ما میگه که در سه ماه گذشته شب و روز 24 ساعته قند افریجش چی بوده بین دهم تا 6.4 دهم. 6.4 اینا به هشباز پری دایبیتیس میگن یا قبل از دایبیتیس 6.5 دایبیتیس هست بسیار سپس گذارد یا دکتر اگر بدیم بریم پیامه برگردیم فارمرز و شما من جیلا بدی از شما می میکنم به برنامه جدید ما همین سه شمده ساعت 9 صبح توجه به دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت دو تا سه بعد از ظهر در برنامه اشکا و لبخندها 818 380 957 هومن میسانی برایان میسانی دو چهره شناخته شده و موفق جامعه ایرانی افتتاح دیلریشیپ های هاندای و هیونجیپ را در لس آنجلس باگوی میرسانند. و به همین مناسبت فقط و فقط تا پایان این ماه می توانید یک خانده ایلانترای 2014 را با فقط ماهی 179 دلار لیز کنید توجه فرمایید فقط با ماهی 179 دلار یک خانده ایلانترای 2014 را لیز کنید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 من دکتر دلیل کمن جراح چشم پانزدهمین سال تولد رادیو ایران 670 AM KIRN این رادیوی پر شهر منده راست تبریک از میکنم KIRN 67 AM های دانش برنامه‌ی از اجوبان السرهان دوستان گرامی در خدمت جان دکتر وید mabadi هستیم برامون از غن دیابت گفتن طرز تشخیصش و علائم و برمون از درمان و تازه های اون خواهند گفت می‌گفتین دکتر جان مرحله دوم تشخیص ارشد کردم که هموگلوبین ایوانسی است با زباره این در گروه ها و اتنی گروه های مختلف فرق میکنه. به عنوان مثال برای ایژیان این کات پوینت چیز شیش و سه هم سیکس پوینت تیری هستش که دیابت را تشخیص میزانم در در امریکا ما سیکس پوینت فایب به خاطر باز فرقی که بین بادی و اینا ها هستش. بعد مرحله سه بومینه که خیلی هم پیش میاد مریضا میان و سیمتوم های دایبیتیس ها دارند یعنی که مهمترین نشون هستش تشنگی مفرد آب زیاد می نوشند بعد ادرار فراوون و وزن از دست میدن بدون اینه که هیچ دلیل و چیزی براش پیدا بکنند این اگر در همون موقع ما دندش چک بکنیم دیویست میلی گرم بردسی یا بالاتر باشه این برای تشخیص کافیه و چیز هست و راه چهارم اینه که ما به اسطلاح اورال گلوکوست طالرانستنس که یه به اسطلاح گلوکولا هستش که میدن یه آبی آب غندی هستش که تقریبا 100 گرم قند توش هست اونا مریض میل میکنه بعد تقریباً یک ساعت بعد و دو ساعت بعد اندازه میگیرن اگر بین 144 تا 140 تا 199 باشه این پی دایابتیس است یا انکریز ریسک اف دایابتیس اس ولی اگر بالای 200 باشه تشخیص دیابت هستش این تستی هست که خیلی تقریبا اکثر خانم های حامله در هفته 24 تا 28م روشون انجام میشه درش. که مطمئن باشن بیماری قند ندارن من یه نکته هم دوستم که اصلا ما صحبت که معنی دائبتیست ملیتوست یعنی چی این برمیگره به زمان خیلی سال پیش در زمان مصری حتی بیش پیش از میلاد و اونا میدیدن که ادرار مریضای دیابتی خیلی مورچه رو به خودش جذب میکنه تا اینکه در سال 1425 در یونان و این کلمه اصلا اصلش یونانی هستش که دیابت به معنی همون سیفون یا گوترو یا یه چیزی که همجور مثل آب خیلی چیز رد میشه ملی هم یعنی شیرین و اصلا تشخیص اینجوری دادن که دیدن الزت edرال مریزایی که دیابت دارن بیشتر هستش از افراد دیگه و به فرمش یه مقدار متفاوته اون که زیگ اینو کشپ کرد چشیدش شیدهش و دید که شیرین هستش و اینا و اصلا تشخیص از اونجا اومدهش بیم من خوبه که یه مقدارم راجع به بیماری دوید در امروزه یعنی در یا مقداری که در حال حاضر وجود داره هست تقریباً 8.5 درصد های یا افراد بالغ در امریکا دیابت دارن که تقریباً حدود استیمید میشه الان که تقریباً 15 درصد این افراد یعنی 15 درصد افرادی که دیابدان هنوز چیز تشخیص, تشخیص, تشخیص داده نشدن و اینا این حالا خیلی نکته جالبیه و وقتی که شما نگاه میکنین چارت یا اون نقشه امریکا رو که انتشار دیابت رو نشون میده بعد همون نقشه رو شما انتشار چاقی را که نشون میده آدم در وهله اول نمیتونه تشخیص بده کاملا منطبقه اگر ننوشته باشن که این کدوم مربوط به چاقی کدوم مربوط به دیابت هست خیلی اسیش هستش یکسان هستش و, این و معمول چیزی هستش که هند تو هن یا دست به دست هم دیگه با هم پیش میره یکی از عوارض یا دلیل های عمده دیابت هستش اه آه حالا اه نه اینکه ما بخوایم شنونده ها رو بترسونیم ولی این هفتمین علت مرگ هستش در کشور امریکا در حال حاضر و دلیلش هم از عدم معمولا کامپلاینس مریضا ازش میادش که رعایت نمی و دنبال نمیکنن دارو را مخصوصا دارو درمانی را که خیلی مهمه و نقش رول خیلی مهمی داره نکته دیگه که من فکر میکنم چیز باشه یه مورد در مورد دخترها و خانومای جوان که مخصوصا به فکر حاملگی هستن و یا دیابت دارن یا ندارن این باز نکتهیه که خیلی ایمپکت خیلی بزرگی روی هم بچه داره هم روی خود افراد داره و روی حتی هلکر سیستم و هزینه هایی که هتیار سیستم خواهد داشت داره خیلی خوبه اونایی که دیابت دارن تا قبل از اینکه که دیابتشونو تحت کنترل نگرفتن پرهیز کنن از حاملگی و حتیل مقدور حامله نشن حتیل مقدور باز توصیه میشه که هموگلوبین ایوانسی در رنج 6.5 تا 7 باشه حداقل برای 3 ماه قبل از اینکه حاملگی پیش بیاد و تا اینی که بشه تضمین کنه حاملگی بدون مشکلی در پیش باشه یه نکته دیگه خانومایی که در طول حاملگی ما ترم جستیشنال دیابتیس رو داریم که در حقیقت اون حاملگی باعث میشه که پنکراست نتونه یا لوزول مده نتونه انسولین بله انسولین کافی رو ترشو بکنه اون باز خیلی مهم خانمایی که در اون یعنی اون تشخیص براشون گذاشته میشه حتما اینا دنبال بکنن که چون که استادیانشون میده تقریبا چهل تا شهست درصد این خانم ظرف پنج سال بعد از حاملگی شانسی اینا دارن که دیابت بگیرن و اینا. معمولا هم دیابتی که میگیرن دیابت نوع دو هست. حالا بعد هم نیست که کدیگوری های دیابت هم یه ریوی بکنیم. دیابت تایپ وان هستش که معمولاً این به خاطر یک آرزه یا یه انسالتی که به پانکراست وارد میشه و تولید اینسولین الافاصله متوقف میشه و معمولا ما در افراد جوون می‌بینیم، <تصفيق> معمولا در افراد زیر 20 سال دلیل های مختلفی براش گفتن از جمله یه آاتی ای میون دیزیز که به هر دلیلی بادی شروع میکنه با به بادی، علیه پک تولید کردن دلیل رو میگن ممکنه ویروس ها باشن و هنوز واقعا شناخته شده نیست مقداری در جین و اینا بحث شده که کامل، کاملا مشخصید نکته یا نوع دوم دایبی دایب دیسه تایپ تو هستش که معمولا ترادیشنالی ما میگفتن که بعد 30 سال بعد 40 سال ولی متاسفانه این سن همینجور داره کمتر با کمتر با کمتر میشه تا جایی که تقریبا شد 3-4 ماه پیش بود من یه کانسالتی شدم به خاطر یه بچی 9 ساله که تایپ دو داشت و بچه چاق و بچه یه چیزی بود خب اینا ده تا حدودی اینسولین در ابتدا دارن ولی خب در طول زمان معمولا اینسولین کم میشه و بایستی خیلی مراقب باشن و به موقع عمل بشه چه زمانی چه داروی شروع بشه و کامپلاینس دارو خیلی مهمه نوست سهومی دایبیتیسی که من به خودش حرف اینجا چیزم آقایونه اتبا باشه سکندری دایبیتیس هستش سکندری دایبیتیس معمولا دیابتی هستش که به خاطر یه مشکل دیگه ای دیابت گرفتن نه تایپ وانه نه تایپ تو این تشخیصی که معمولا آدم باز نمیره تو چارتا فقط توی اکادمیک سنترها را هستش که درس داده میشه مثلا مریضایی که ما اغلب می‌بینیم که روی داروهای کورتیزون و اینا هستن اینا دیابت میگیرن به خاطر کورتیزونی <مید> که میگیرن یا بیماری های دیگه مثل مثلا اکرومگالی که هرمون رشد خیلی به اندازه زیاد ترشون میشه یا بیماری کوشینگ اینا, اینا معمولا راه یا ترم درست همون سکندری دایبیتیس هستش یه دایبیتیس دیگه هستش که بهش میگن لادا یا لیتنت آتو ایمیون دایبیتیس آف عدالت حالا دلیل اینه که من این کتگوری را عرض کردم اینه که خیلی وقتا میشه معمولا اینا افرادی هستن که توی سنین بالای بیست تشخیص گذاشته میشن با این نوع دیابت ولی خیلی زود به اون دارو که مثلا معمولا متفورمین یا داروهای دیگه که به صورت پرس هست داده م. میشه خیلی زود اینا دوشاره م. چیز میشن فیل بلد. میکنن بله نمیتونن م. که ادامه بدن اینا معمولا میان و همه جور قسم و آیه هم میارن که ما دارو رو میخوریم م. ولی خب بعضی وقت کسی باورشون نمی میگه توی که دارو رو نمیخوریم تا، اینا چون همین اینا در حقیقت چون سیکندری بله چون و بعدش هم اینسولین تقریبا خیلی سریع از بین میره یعنی پنکراس در ضحفه 6 ماه تا دو سال معمولا فیل میکنه و از کار میفته به این خاطر اینا خیلی سریع باید شروع بشن رو روی اینسولین هم. تا بشه کنترولشون کرد به همین خاطر یعنی اسمش لادا یا ال ای دی ای یا لیتند آتو ایمن اف عدداد بهش میگن ببین دکتر این ن قبل از اینکه گفتین دکتر که ن تایپ 1 بود نه تایپ 2 اونجا کمبود آنسولین یا رینس به انین اونجا هر دوتا هست هم ریزینس هست و هم کم اون رینس در حقیقت باعث میشه ام. که در نهایت، پنکراست از کار بیفته ام. چون که مثل میشه یه دونه کارخونهی که 24 ساعته کار کنه بدون مینتیننس و در نتیجه بالاخره فیل میکنه و معمولا مثلا داروهایی که مثل استروئید و اینا که افراد استفاده میکنن خیلی چیز میکنه مستعد میکنه افراد به این نوع دیابت بسیار سپاسگزار برمیگردیم دوستان دکتر امیر یزدان جراح و متخصص کاشت مو در اورنج کانتی و لاس وگاس و جراح ویژه کاشت مو در شو تلویزیونی داکترز دکتر امیر یزدان از مدود جراحان متخصص است که از تکنیک جدید FUE استفاده می کند. دکتر امیر یزدان این جراحی را بدون برش بخیه، خیه منگنه و بدون جای زخم به طور کاملا طبیعی و با ضمانت انجام میدهند 9495283864 osihairtransplant.com یا اومد یا کیپیک با چشم زار برای الکساندر اسکندری نگاو. کار بگفتا الکساندر در طلاقشم همی که اونم حق موکل همی نگاهی به میمه به نگاهی به خود زاد کرد بگفتا که یارون بواب کرد که پیکار کرد تصادف که آمد پیش عزیز نه ترس از حوادث نه از تیغ تیز به دست خود را دست من را بگیر که باشم را در دیم حادث دست گیر در هفتخان شرکت های بیمه در کنار شما و برای شما خواهم جنگید دکتر الکساندر اسکندری وکیل دادگاهی تصادفات و صدمات بدنی سی سد ده چهار سد و نود و دو دو هزار یک و پنج و پنج صدمه بله رست خود را دست من را بگیر که باشم در دیم حادث دست گیر هر چی طولانی‌تر روی پاهم وای می‌ستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه به خاطر رگاه واریس پام دیگه خجالت می‌کشم دامن بپوشم سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کند. کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخ خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی مشکلات واریس و رکای پا توسط شرکت های بیمه مدیکر و مدیکل پرداخته می شوند مطب در انسینو 818-900-2700 سی دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند سی سال درد پای شما را کاهش دهد خوی هستم 15 همین سالگرد راژیو ایران 67M به مدیران، کارپنان و همه جنبندگان خوب این رادیو تبریک میگم یکی از بهترین دسانه های گروهی در خارجت کشور ما هستش و براشون آرزوی بهترین ها و موفقیت هر هرکی بیشتر رو از خدا من خواهد از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا کئی آی آر این 670 ای ام سی میولی مرزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پشوشگران ایدان دوستان عزیز پای گفتار آقای دکتر ویده مابادی اصلا پروفیسور دانشکار یو سیلی در آلیف ویو سنتر استیم برامون از دیابت گفتن از مدوالک سندروم طرز و تشخیص و انواعش و الان چند کلمه راجع به درمان برامون میگن الان 6 و 31 دقیقه است ما 7 و 8 دقیقه دیگه خط تلفن رو باز میکنیم 323-512-7264 وقای دکتور به پرسش های شما پاسه بذارد میگفتین چون دکتور درمان قبل از اینکه من یه خط قبل از این قبل راجع به درمان صحبت کنیم در قند بیماری قند اون ملفزات همون باز خود قنده که بالاست به هر قیمتی شده اینو باید آوردش پایین چون که اینه که باعث مشکلات فراوون میشه و وقتی که این قند بالا هستش خب مسلما یه چند ارگان هستش مثل مغز و اصاب مثل چشم مثل کلیه ها قند در داخل اینها وارد میشه ولی در ازولاد در یا چربی بدن وارد نمیشه و به مصرف انرژی درست نمیرسه اون ازدیاد غند در این ارگان که باعث این مشکلات میشه ما امروز الان مسئله کوری در دنیا علت اصلیش و علت فیزش قند هست حتی در جاوان هم میشه متاسفانه منطور چون اینقدر هز... چیز کنترل شده اینفکشن و اینا که در قبل و افونت و اینا با هایی که هستش کنسور شد دیگه اون اولین مکان اول نداره مکان اولو بیماری غدد داره به این خاطر خیلی مهمه که کنترل کرد یا معمولا می‌بینیم که اگر به طور متوسط 17 سال از زمان تشخیص اگر کنترل درست انجام نشه معمولا مریضا ختم میشن به دیالیز که واقعا نمی ارزش نداره که با این همه داروهایی که در در, در دسترس هستش این ارزش جلوگیری نشه معمولا در قسمت تایپ 2 دایی بدهیست که خیلی شایدتر هستش معمولا 80 تا 90 درصد افراد تایپ 2 دارن 10 درصد شاید باشن تایپ 1 و یا و تایپ های دیگه هم شاید 2-3 درصد بیشتر نیستن اینا. با, با تایپ 2 من شروع می کنم که معمولا متفورمین بهترین دارو هستش از سال 1943 در فرانسه استفاده می شد دقیقاً 1996 اگه اشتوانه کنم در امریکا اپروف شد و FDA اجازه استفاده داد بسیار داروی خوبیه و کارش این هستش که اجازه نمیده که قند زیادی با از طریق کبد, کبد تولید بشه. ساختمشه. همچنین ازولات و چربی ها رو بیشتر مستعد میکنه به دیپازیت شدن یعنی قلیسترول ببخشید قند. قند از جریان خون خارج بشه راحت تر و در اونجا خیلی داروی خوبی هستش و خیلی ارزون هستش و معمولا کمک میکنه که با دوز مناسبش مریضا خیلی راحت تر هم وزنشون از دست بدن داروی دیگه ای که هستش در این زمینه داروی پایگلیتازون یا همون اکتوس هست که این روزا خیلی مورد حمله هستش که چون باعث سرطان مستانه اخیران خیلی تبدیق میشه و آدم میشنبه در رادیو هم تبدیق میکنن که اگر کسی سرطان مستانه گیرستی بیاییم بیایی پیش ما منطور <تصفيق> این دارو در فرانسه و در آلمان استفادهش ممنوع شده منطور FDA ای مشکلی ندیده در امریکا دلیلش همینه که مردم خیلی سیگار میکشن در اونجا و بیشتر به خاطر اون هستش داروی بعدی یه داروی خیلی قدیمی که همون سالفانی ها بهش میگن که مثل گلیپیزاید مثل گلیمپراید یا مثل گلایبوراید هست اینا میرن و تحریک میکنن پانکراس که بیشتر انسولی انسان. طور کنه و بعدی به شرطی که پانکراسی باقی مونده باشه این خیلی مهمه باز دوباره در, در منیجمنت دایبیتیست که ما ببینیم تا چه مدت مریض با این داروهای دهانی یا خوراکی میتونن پیش برن و دوباره خودشی تشخیص زمان مناسب که به اسطلاح oral agent failure یا زمانی که دیگه داروهای خوراکی ناکام میمونن در کنسول بیماری چناخته بشه و به موقع مریض شروع کنه به اینسولین گرفتن میخوام مخان میخوام جواب, جواب بدیم به چند توش دوستان مال تزریق دوست ازش بفهمید ریخته شدیم بعدی بگوش بله خیلی سلام میخوام از شما مثل آقای اوهی دو طرف داشته به دست پیل می‌دونیم توی اینترنت شما عالی وی آمریکا و سنتر اونجا دکتر توی اینترنت هم هست اینترنت عالی دکتر دکترمهابدی بسیار سپس می توش تاح بفهمید؟ بفهمید بله بفهمی باشیم سوالی داشتم در مورد وجود پروتئین در ادرار بله وجود وجودی پروتین در ادرار بله, بله. بل عرض کنم که این یکی از های بیماری دیابت هست معمولا و معمولا این بایستی حداقل سالی یه بار توسط پزشک شما چک بشه این حالا نمیدونم شما چقدر از زمانی که شیمی میخونید اسموزیس لا یا همون قانون اسموز را یادتون میاد این ادرار همونجور که گفتیم شیرینه دیگه پر از قنده این خیلی با شدت اون آبی که در پلاس ماستش و دنبال خودش میکشه و از اون فیلترهای کلیه در حقیقت این مولکولای بزرگتر که پروتین هستن رد میشه نکته دومی که باید توجه بشه بیماری فشار خون هست اگر فشار خون داشته باشیم باز دوباره این بیشتر مقدار پروتینی بیشتری رد میشه به خاطر فشار در نتیجه داروهایی مثل کلاس ایس انهیویتور استلاح هم بهشون میگن که این رگ کلیه رو یه مقدار گشاد میکنه و اون فشار در داخل اون نفرون های کلیه میافته می پایین در نتیجه میشه خیلی زود در ظرف چند روز این مشکل رو حل کرد البته قسمت قندش خب زمان طولانی تری رو میخواد بسیار سباز بس بفهمید دوست عزیز بفهم. بر شما و آقای آهیدین و آقای والا من ببینید من دیابت الان 28 ساله که دارم و خود من نزدیک 80 ام دیگه فقط من ببینم این فقط باید صبح اینطور باشه یا شب چجوریه جوریه اون وقت حداقلش چقدر باشه که دیگه آدم چیزی نخوره به خاطر زیاد شدن؟ چی چه جوریه در صبح یعنی قند و میزان قند رو بله میزان قند هست برهن برهن بهترین قندی که شما میتونید در صبح وقتی از خواب بلند میشین 90 تا 110 هست این خیلی رنج خوبیه دیگه از 110 بیشتر نباشه برای یه شخصی که دیابت داره بعد شما وقت دیگه که میتونید قندتون رو چک بکنین قبل از نهار هست یا قبل از شام 130 باز خیلی نمره خوبی هستش اگر شما بتونین در اون حد 130 قبل از نهار و قبل از شام بسه. آقا دوکر بباشیم بعد با صدستی اگه بخوابم خوبه؟ نه خیلی حالا اگر موقع خواب چک میکنین باز دوباره اگر همون مثلا کمتر از صدستی باشه خب مسلم بهتره ولی در این حال شما مخصوصا به خاطر سنتون نه, نه اینکه حالا فقط مختص شما باشه ما در دیابت حالا درسته که ما تمام هدف اینه که بالا بودن قنده کنترل کنیم ولی هدف اصلی هدف اولی اینه که بیمار قند پایین نداشته باشه قند پایین یعنی هفتاد به پایین اون خیلی خطرناکه در نتیجه در همون حد نوت تا سد و ده بهترین عددی که شما میتونین داشته باشین اینا. چه موقع اکثر آقا دکتر همینطوره دیگه بیشتر بلد. نمیشه از خیلی هم میشه همیشه من صبح و شب میگیرم همین 985 90 اینطوری هست بلد. بسیار خیل... خیلی متشکرم امروز دوست دارید بفهمید بفرمایید دوست واسه بفرمایید بله بفهمید سلام علیکم درود بفهمید من یه سوالی از آقای دکتر داشتم این سوزش انگشتان پا از چی میتونه باشه سوزش انگشتان پا اگه دیابت شما دارین این اصطلاحاً دمیج یا, هم یا اون لطمه یه که به نرو شما وارد شده چون که اگه بخاطرتون باشه چند دقیقه پیش عرض کردم سه تا ارگان یا سه تا تیشو یا سه تا بافت هستش که وقتی قند بالا میره اونا دیگه انسولین باشه یا نباشه داخلش میشن چش احساب و کلیه ها به خاطر همین هم از اینا اون هدف های یا تارگت های اولیه این بیماری هستن که معمولا باعث شد حالا اگر شما دیابت دارین این مطمئنن حالا نه مطمئنن ولی خب معمولا دو سوم این دمیجی که حاصل شده شما با کنترل خوبه معمولا برگشت پذیره چالی بسیار سپاسگزار دوستان عزیز از شما قربان شما عزیز در این بخش از برنامه پژورشگر جوان نوید ماوابادی برای ما پیرامون بالابدن فشار خون خواهند گفت برمیگردیم بعد از پیام ها و بعد سوال شما پاسخ خواهند داد بسیار سپاسگزار همین هفته توجه شما را به برنامه از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می کنیم 866-444-6411 درمابر تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی Tabar irani Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi. Da fotel who he ducto Beverly Hills, Sherman Oaks, Glendale, Woodland Hills, Va Navadono, I remember the moment. I'll never forget that moment. That moment we arrived in scene. The storm had nearly destroyed the area. This was our own community. Friends, family. People we grew up with, went to school with, we were there to help. Several of us were working to rescue a family. They made it down to the storm cellar, but the house collapsed on top of the cellar door and trapped them. We had chainsaws going, and we had to use Humvees and heavy machinery to move massive trees and debris. We got them out. We helped a lot of people out. It felt good to know I could really make a difference. Right here, close to home, in my state. It was one of those life-changing moments where I realized... I am making a difference in these people's lives and mine. I'm a citizen soldier in the National Guard. You can serve part-time and be there the moment your community needs you. Learn more at NationalGuard.com. Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station. Frontier Windows wants to wish KRN 670 AM a very happy 15th anniversary. Thank you for keeping our community united and informed. شیطان آفتابی آن لس آنجلس های دانش برنامه از آنجامن استادان و پژوهشگران ایدونی میارگرامی شنوندگان عزیز از دکتر و حالا از پژوهشگر جوانمون نوید مهادی پیرامون بالا بودن فشار خون میشنویم ایشون در UCL درشته در علوم احصاب نوروساینس اموزش دیدن در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی در رشته گلوبال هلت پزشکی بیماری اشی در کشورهای گوناگون دنیا تحصیلات عالیه داشتن و فوق لیسانس گرفتن در آفریقا در کشور زامبیا فرایتهای بهداشتی و آموزشی داشتند. و در مرکز پزشکی آنجا سخنرانی آبرسانی کردند در ایران با مرکز پزشکی سازمان محا کار کردن در روسته های ایران در زمینه سرطان و کودکان پژوهش و فعالیت بودند آقای نوید مهابادی در حال حاضر دانش دانشکده پزشکی چاوزو پژوهش و بررسی میکنند جناب نوید مهابادی عزیز به برنامه دانش خوش آمدین برای ما از خون بالا بگویید با اون فارسی زیبایتون با <تصفح> اینکه در اروپا به دنیا آمدید و در امریکا بزرگ شدی بسیار سپاسگزارم بسیار خب تشکرام که ما دعوت کردیم تشکر ما تو چازجرو با گروه آقای دکتر بازگان و دکتر شناس اونجا داریم ریسترچی میکنیم راجع به هایپرتینشن تو سالمندا و توی پراجکتمون دیدیم که چون که سالمنده خیلی از چند تا قرص بخورن توی روز بعض وقتا تا قرص بستی بخورن و خیلی هاشون با دائبتیزم پرابلم دارن در کنار هایپرتینشنشون ما دیدیم که این یه प्रॉब्लम خیلی بزرگ هست چون خیلی فراموش زیاد هست توی سالمندا و بعضیشون از هایمرز دارن یا اون ستا هایمرز دمنشیا دیدیم خیلی بالاترین ریتش توی گروه سالمندا علاخاطر این هستش که وقتی بس تو روز چند بار چندین دفعه قرص بخورن ممکن این که یادشون بره خیلی بالا هستش و وقتی یادشون میره پرابلم ها دیگرشون بدتر هم دیم میشن سمسند یک کسی که هرپیترشون داشته بایدش و قرصهاشون هم نخورن دیم داری بیتیزشون همین uh, هاشون کامپلکیشن بزرگتر بدتر میشن و سادیمون دیده که توی منوریتی های سنترال و سنجلس خیلی بدتر این پرابلم هستش هم. و میخوایم حالا ما یه پراهی پیدا کنیم که این پرابلم رو درست کنیم و سعی کنیم Uh, یادشون می با روح های مختلف از, از روح هایی که خیلی می خواهیم دنبالش می با روح های تکنولوژی هستش و سرکنیم با این راه بریم جلو. دیگه یک پرویم هایی که پیدا کردیم هستش که خیلی از دفع وقتی دکتر رو بهشون قرص میدن دن یاداوری بهشون می که چاید ما هستش که هر تا بخورن تو روز خیلی از دفاع دیدیم که سالمند ها یه بار میخورند تو فکر میکنند کافی هستش و این هم نیست فرموش فرموش نمیکنند از این جایت یه, جات یه جات هم پزشک بهشون یاد وینیم که چقدر مهم هستش که هر دفعه هر سه بار خورت بخورن. این میس کمونیکیشن ها دیدیم زیاد هست با پیشنت های سالمند بسیار خبر خوب شنیدین دیگه که داروساز دارو ها میبینند که داروس حد واسط بین پزشک و بیمار یو <متحدث> سی هم این کاره میکنه یو سی میکنه که هم دیگه و این خیلی کمک خواهد کرد که بیمار با دکتر داروسازی که دور دیده و تخصص گرفته بره دوره کنه داروخاشو و گرفته گرفتاره و دکتر داروساز با پزشک در میان میذاره و اگه سوالی داشته و بعد در آمادش میکنه و بعد بتا... این برای همه کارا و مفید و افیشینته و خیلی خوبه میخوان یک به دوستی جواب بدیم باید. دوست ازی بفرمیت سلام انتون خبتن نباشیم خواستم از آقای دکتر سوال کنم که برا نقرس چه چیزهایی خوبه که بخورم و چه چیزهایی ضرر داره بسیار نقرس یا همون گاوت خب بیماریه که مقدار میزان یوریک اسید میره بالا در باز دوباره تشخیص اینو در همه این چیزها خیلی مهمه نقرس به دو حالت میتونه وجود داشته باشه یک آنزیمی هستش که در اون راهی که این پروتئین پروسس میشه و اینا در اون راه یک خللی هستش و در نتیجه اون یوریک اسید درست به متابولیز یا سوخت و ساز نمیشه و میره بالا یه گروه دیگه هستن که کلیه هاشون یعنی اون کار درست انجام میشه اما کلیه ها هستش که ترشح نمیکنن بیرون در ادرار به این خاطره که باز دوباره نوع تشخیص خیلی مهمه ولی کلا از غذاهایی که پروتئین بالا مخصوصا پروتئین حیوانی هستش شما تا حدودی در حد اعتدال این اجتناب کنین خب مسلم بهتر است شو اینا مونتا اگر شما تشخیص گذاشته شده باشه این مطلب نیاز به دارو دارین و دارو بهترین چیزی که میتونه اینو کنترل بکنه من اگر اجازه بدن آقای دکتر میخواستم یه نکته‌ای هم راجع به این ریسرچی که مهم. آقای نوید خان را گفتن یه مشک... این یه مشکلی ازش حالا در مسئله خب فراموشی و اینا نه فقط مختص افراد پیریس افراد جوون هم همینطور فراموش میکنن حالا این تکنولوژی خیلی مفید باشه مثل همین سلفون ها و همین چیزها که بتونن یه ریمایندر یه چیزی باشه خوش. ولی مشکلی که ما در پرکتیس میبینیم معمولا اینه که خیلی خ... از مریضا اهمیت اون دوزا اون چیزی که بهشون داده میشه رو توجهش نمیکنن و فکر میکنن که شاید بشه یه جوری بشه مثلا بدونه اونم کنترل کنه که این خیلی اشتباهه و واقعا ارزش نداره که چون من همیشه به میگم این قند یا فشار خون اگه بالا هست یه دونه دو تا سه تا حتی 10 تا دارو اگر مصرف شه اینا کنترل کنیم بهتره تا اینکه خدای ناکرده یه سکته مغزی اه. یا یه حمله قلبی یا کوری بخواد دنبال این مسئله باشه درسته بسیار سپاس گزاره. دوست عزیز بفهمید؟ سلام هست شد بابنده هستی بله بفرمید مصد... تشکر از برنامه تون میخواستم ببینم ارتباطی بین فشار خون بالا و آلزایمر وجود داره یا نه سپاس گذاریم اه... تا اونجور که من متله هستم نخیر فشار خون بالا رابطه به آلز نداره اینا ولی خب به یه معنی ممکنه اگر اون فشار خون کنترل نشه از راه دیگه یعنی خدای نکرده استروک یا اون سکته مغزی خب اون یه قسمتی از مغز دمیج میزنه خب اون خود به خودمون اگه در قسمت حافظه یا مموری باشه خب مسلما بسیار سمارس کنم درست عزیز بسیار خب بسیار که مخود شده بسیار خب شد عرضم بزرگتون بعد این پالی فارمسی و فراموشی و توجه نکردن رو دوز من یادم که سمشناسه ی جمله معروف داشتن میگفتن دوز می‌خست تاکسین، یعنی دوز همه چیه. همه کم باشه گرفتری جد و نزدیک باشه میشه سام. بعد دوز مناسی که پزشک با تجربه و چند بعد از چند ویزی تاین میکنه این بعد بیشترسپید و رفته لوین هر. توست از این بفهمید. بفهمی بفهم خوبه. کی موتیکه؟ بفهم. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. خب. بارس و با چی میشه برای که مادر من دو سال پیش خیلی سرحال بود همه چیزم به یادش من الان بنده خدا و الزایمر دوچار شده و قراموشی براش پیش باده سپس بله بله خاشم. خاشم. خاشم. <متصوح> حالا این من اصلا من کارم هایمر نیست ولی خب بدین الزایمر یه پروتئینی هستش که در مغز رسوب میکنه و این کارا یعنی باعث این بیماری میشه و اینا منطقه حالا این سوال شما خب خیلی سوال سختیه که باعثش چیه این اگر ما میدونستیم که خب خوب چیز بودش خیلی کارا حل بودش و اینا میگفتن چرا رو بل. متخصصی نمیتونم بگن چرا کار بل. خداست بل. چه جوری رو میتونیم بگیم <تصفح> ولی چرا جوابش رو فقط از خودم میشنشه دوست عزیز بفهمید؟ آخرین سوال بفهمید؟ بفهمید دوست عزیز سلام. بفهمید؟ اه... ببخشید ما هستم از دکتر سوال کنم که می که قرص فشار خون رو زیاد بخوری یعنی تا دوز چند دازه همون دوزی که دکتر بهتون دادن داداردان می خورم با اتنولول و ایزورباید بله داروهای بسیار خوبی هستم متخب همون دوزی که دکتر بهتون میده. یعنی منم منظور این بود که مهم نیست که چند تا داروش ما می‌خوریم، ولی بهتر هر چیزی بهتون دادن شما میل بکنین چون که عاقبت نخوردن خیلی بدتر از اون خوردنه آه. چون میگن همه میگن ساید افکت داره مسلماً من کنترل میکنم معمولا خوبه بله خب هم موضوع دیگه بسیار من یه نکته اخر راجع را به ساید افکت بگم مهم. چون همه از این گله میکنن خب همه چیز تو زندگی ساید افکت داره حتی آب بعد ما همه الان رانندگی کردیم ما دیدیم به اینجا ممکنه بود تصادف کنیم از بین بریم ولی مم. نمیشه مم. سای دفکت ما نم. نم. به البته این ساید افکت ما نمیایم هر چیز انداز داره. داره. نور اکسیژن حتی آب حتی آب سپاسگزار پوزش از دوستانی که دارن زنگ میزنن و نمیتونیم بهشون جواب بدیم ان باز جان دکتر و نوید جان رو خواهیم داشت در برنامه هفته عالی در به آید جان بسیار سپاسگزار خدا نگهداره همه کی خیلی ممنون مشارکتتون شما شما ارزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پجوشگران هیدان